ناشناس مدتی طولانی نشسته بود و به در نگاه می گرد. سپس سپسندلی خود را به طرف میز تحریر گرداند و ماشین تحریر دستی را از روی میز برداشت. نامه ها و بسته های پستی درهم برهم را از روی میز شلوغ کنار زد و جایی برای آن باز کرد. فکر کرد که اگر نامهای به این دوست قدیم خود در نیویورک بنویسد، شاید درمانی هرچند جزئی برای حالش باشد. اما حالا انگشتهایش چنان به شدت میلرزید که هر کاری میکرد کرد نمی کاغذ را توی ماشین تحریر جا بدهد. یک دقیقه دست را در دو طرف تنش رها کرد. سپس بار دیگر دست به تلاش زد اما سرانجام کاغذ را توی دستش مچاله کرد. آگاه بود که می باید سطل خورده کاغذ را بیرون ببرد. اما به جای هر کاری در این باره دست را روی ماشین تحریر گذاشت و باز سرش رو روی آنها قرار داد و چشمایش را بست. به دنبال چند دقیقه روشه، چشمایش را رو که باز کرد، یک بسته کوچک پستی باز نشده را که با کاغذ سبزرنگی پیچیده شده بود، جلوی روی خود دید. احتمالا وقتی برای ماشین تحریر جا باز کرده از لابلای انبوه چیزهای روی میز نمایان شده بود. نشانی‌های متعددی را روی آن دید. تنها در یک روی بسته دستکم سه شماره صندوق پستی ارتش را تشخیص داد. بی آنکه حتی نگاهی به نشانی فرستنده بیاندازد، بسته را با بیعلاقگی باز کرد و برای این کار آن را با شعله‌ی کبریت سوزاند. بیشتر خوشش می‌آمد سوختن نخ را از سر تا ته تماشا کند تا به باز بسته بپردازد. اما دست آخر بازش کرد. توی جعبه یک یادداشت داشت که با جوهر نوشته شده بود روی شیء کوچکی قرار داشت که توی دستمال کاغذی پیچیده شده بود. یادداشت را برداشت و خواند. دون جاده شماره 17 هفته جوهنه 1944 گروه ناشناس عزیز امیدوارم از اینکه پس از 38 روز به شما نامه می نویسم مرا ببخشید. راستش، چون خالم دچار بیماری انگل گلو شده بود و چیزی نمانده بود عمرش را به شما بدهد فرصت سرخاراندن نداشتم تصدیق میکنید که مسئولیت های من چقدر سنگین شده است با این همه بارها به یاد شما و آن بعد از ظهر لست بخشی افتادم که در سی آفرید 1944 از ساعت 3 و 45 دقیقه تا 4 و 15 دقیقه در صورتی که فراموش کرده باشید در مصاحبت یکدیگر گذراندیم. ما همه به خاطر روز آغاز عملیات فوق دچار حیجان هیجان دلهره ایم و فقط امیدواریم که این کار به سرعت جنگ و این شیوه زندگی را که همینقدر میتوان گفت خنده آور است پایان دهد. من و چارز هر دو نگران شماییم و امیدواریم که شما که از کسانی نباشید که اولین بار بر شپ جزیره کتانتن حمله کردند. لطفا هرچه سریتر پاسخ نامه مرا بنویسید. سلام گرم مرا به خانمتان برسانید. دوستدار شما. اسمه بعد و تحریر من به خود اجازه دادم که ساعت مچیم را همراه نامه بفرستم تا شما آن را پیش خودتان تا پایان نبرد نگه دارید. در طول مصاحبت کوتاه خودمان دقت نکردم که ساعت داشتید یا نه؟ به هر حال؟ این ساعت بی اندازه ضد رطوبت، ضد ضربه و نیز دارای مزیت های دیگری است که از آن میان سرعت قدم زدن را در صورتی که شخص بخواهد نشان می دهد. من کاملا یقین دارم که شما در این روزهای دشوار استفاده بیشتری از آن خواهید برد که به فکر من هم نمی رسد و نیز آن را به عنوان تلسم خوشبختی از من خواهید پذیرفت. چارلز که مشغول آموختن خواندن و نوشتن به او هستم و دریافتم که نوآموز بیاندازه باهوشی است میل دارد چند کلمه بنویسد لطفا همین که وقت و تمایل پیدا کردید نامه بنویسید سلام،, سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام و بوسه چارلز مدت زیادی طول کشید تا و ناشناس یاد را رو روی میز بگذارد چهرسد به اینکه ساعت مچی ازمی رو از جعبه بیرون بیاورد سرانجام وقتی ساعت را برداشت شیشهاش را دید که در نقل و انتقال شکسته است نمیدانست که ساعت آسیب دیگری هم دیده است یا نه اما جرأت نکرد آن را کوک کند تنها مدت زیاد دیگری ساعت بدست به, به همان حال ماند سپس ناگهان با حالتی وژدآور اسکر به خواب می‌رود. اسمش به راستی سر کار تو با مردی خوابالود افتاده است. مردی که همیشه بخت آن را دارد که باز انسانی بشود که قوای ذهنی‌اش همه سالم مانده است.